ممکنه یه سوال اینجا مطرح بشه و اون اینکه حالا بازسازی سازی میراث حدیثی یک شخص چه فایده ای داره خب بر حال شما در واقع احادیثی که در کتاب های دیگر موجود هست رو اینها رو گزینش میکنی در یه جد جمع وری میکنی خب این احادیس در منظر و مرآی علما و پژوهشگران خب هست دیگه در مثلا کتاب دیگر کتاب جوامع دیگر خب اینا رو جدا کردن و در یه جا آوردن چه سودی داره؟ در واقع شما کشف جدیدی انجام نمیده یک داده جدیدی رو اضافه نمیکنی همون چیزی که تو کتاب ها پخشه این رو یه جا جمع میکنه این چه سودی داره چه فایدهی داره درباره پاسخ به این سوال در بعضی از کتاب ها به این موضوع پرداختن و فواید بازسازی کتاب کوهن رو بهش پرداختن به شکل علمی مثلا همین کتاب دیگه مستحضر هستید خودتون همین کتاب بازسازی متون کهن کوه... حدیثی آقای اماده هائری به این موضوع پرداخته آقای جعفریان در مقدمه کتاب الها... الهاوی ابن ابی تی در بازسازی این کتاب در مقدمش بهش پرداخته فکر میکنم یه کتاب دیگری هم بازیشون بازسازی کرده الولایه تب تب تبری رو اونجا مقدمش یه چیزایی گفته و بر حال این بحث بازسازی از ظاهران از سوی غربی ها این موضوع به شکل فنی و علمی پرداخته شده و از اونها وارد... و جوام علمی مسلمان ها شده و آقای تبات مدرسی تبا هم در کتاب میراسه مکتوب شیعه مثلا به کارش رو همین قرار داده خب به فواید این کار اونجا ها پرداخته شده به شکل علمی گفتن فوایدش رو حالا خودمون بخوایم فی نگاه کنیم به این موضوع واقعا خالی از فایده نیست بلکه پرفایده است یعنی این بحث بازسازی حتی بنده در ذهنم حالا با اون ایده های آرمانی که در ذهنم هی میفرورونم من در ذهنم داشتم که مثلا منابع کافی و تهذیب رو مثلا بازسازی بشه حداقل منابع اصلیش بازسازی بشه مثلا یکی از کتاب‌های اصلی که آقای کلینی بهش تکیه اساسی کرده و بیشتر ازش استفاده کرده کتاب‌های ابن ابی امیر هست در بحث نماز یکی از اصلی ترین کتاب منابع آقای کلینی مرحوم کلینی کتاب و ابن عبی امیر هست خب این اگر بازسازی بشه مثلا در یک جلد یک جلد نچندان کمحجم میشه یعنی یه, یه جلد تقریبا شاید قطور بشه از تحصیل جاهای دیگه کتاب و مثلا ابن عبی جمع جمعوری بشه بازسازی بشه یا کتاب کتاب حسین ابن سعید احوازی یا مثلا اون کتاب های شاخص که خیلی مهم بوده اینها بازسازی بشه من فکر میکنم در نوع نگاه علما در آینده نسبت به های اعتبار سنجی تأثیر مثبت میتونه بگذره یعنی اون بوده کتاب مفروضی رو میتونه به شکل ملموسی به آیندگان نشون بده که ببینید آقای مرحوم کلینی از کتاب سلات مثلا ابن عبی امیر داره استفاده میکنه حالا طریق ایشون به کتاب ابن عبی امیر توش مثلا سهل ابن زیاده هست که تضیف شده یا مثلا حتی در بعضی از کتاب ها در طریق بعضی از کتاب ها حتی از کسایی مثل ابو سمین و اینا هم در اسناد کافی ذکر یاد شده ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آقای کلینی کتاب ابن ابی امیر و کتاب یونس ابن عبد الرحمن و حسین ابن سمین اینا رو رو میز گذاشته از اینا داره استفاده میکنه یعنی حادیث اینا رو گردآوری میکنه در کافی خودش حالا طریق ایشون به این کتاب ها توش آدم ضعیفی هستن در واقع تکیه کرده اند به طرق ضعیف و ضعف اونها رو مانع ندونستن در عقص عخصه... یعنی در نقل انتقال کتب علما در واقع تفاوت گذاشتند بین نقش صاحب کتاب بودن و ناقل کتاب دیگران بودن مثلا ابو ثمینه در نقش صاحب کتاب بودن قابل اعتماد نیست کتابهای خودشو اعتماد نکردند ولی در نقش ناقل میراث دیگران بودن بهش اعتماد کردند این اگر خوب به این مطلب خوب فهمیده بشه یه افق خوبی رو باز میکنه برای ما بعضی ما بسیاری از حادیث رو که از لحاظ سندی و رجالی ضعیف میبینیم اینا رو داخل کتاب داخل حادیث معتبر اینا رو تلقی کنیم دیگه و خصودمند هست از این جهت یعنی ما بین نقش ناقل میراث بودن و صاحب میراث بودن افراد ضعیف تفاوت بگذاریم اینکه در بررسی رجالی تک تک افراد داخل سند به یک نگاه بهشون نگاه میشه با یک چوب وضعیت اونها رونده میشه این رو این بازسازی کتاب ها کمک میکنه که این نگاه تصیح بشه در واقع ما کتاب مهور به احادیس نگاه کنیم سند آینه است از نقل و انتقال کتب نسل های مختلف و ما این کتاب هایی رو که منبعه منبع مستقیم منبع با واسطه اینها رو اگه بتونیم در بیاریم استخراج کنیم به تغییر این نگاه کمک خواهد کرد به نظر بنده خالی از فایده نیست بلکه شاید اگر دقت کنیم فایدهش خیلی زیاد خواهد بود که ای کاش ما همه کتاب که اجزایی از اونها در کتاب دیگر به دست ما رسیده رو بازسازی بکنیم حتی اقل از اون درشتا شروع کنیم از اون کتاب های شاخص شروع کنیم از اون کتاب های مهم شروع کنیم و این رو بازسازی با, با یه روش علمی با یه اصول علمی بازسازی بشه و این در مجموع مفیده این یعنی این روی کرد مفیده برای آینده حدیث برای تصیح نگاه ها و برگشت نگاه ها به اون چیزی که در واقعیت در اصل وجود داشته و بعدها تغییر یافته من تصورم این هست که حالا این آقای نهاونده چون دیگه کاری هست که شده و مواد لازمش آماده هست خب حالا ما این رو ما میتونیم مقدم بکنیم و کارش انجام بدیم باسازی اون کتاب هایی که مربوط به ایشون هست رو انجام بدیم ولی اصل این کار من فکر میکنم اگر مجموعه از طلب های جوان خوشتغ آشناب فن باسازی کتب فوت و فنناش رو آشناب بشن و به این کارها به در مجموع من فکر میکنم مفیده میتونه یک حرکت یه جورایی تحولی در نوع نگاه به میراث ایجاد کنه انشالله در این باره هم اگر نکته نظری داشتید بفرمایید عرضوی توفیق داریم خدا انشالله حفظتون کنه